الحمد لله رب العالمين و صلی اللہ علیه سیدن رسول و اللهم رحمتی بحث که مردم رضوان الله درساره مطرح درموندن با زن بعد از بیان مقدماتی به آیا چون جیت زن قابل جرد هست یعنی زن قابل جرد است دلیلی که مفید زن باشه و از توضیحاتی که گذاشتی بهشون برسوبه نشد و بعدم بنابراین گذاشتن که اصل عدم خود جیت زنه اصل اولی این بحث رو بحث سابه انجام دارد و بعدم حال این بحث این که اصل عدم خود جیت درسته نمیدونه بحث شده داشت. اونی که تو ذهن ما بنا شد که بعد وارد بحث مصادیقی بشیم که مرهوم شیخ شد متعرض شدند بعد از مقدمه حجیت زن و مواردی که ایشان بین فرمودند تقریبا با حساب بکنیم به این ترتیب یکی هجیت اصطلاح زواهر کتاب زواهر زواهر ارخاص بحث دوم حجیت قول لغوی که آیا قول لوی حجت هست یا نه بحث بعدی حجیت اجماع که در ادله شبیه ذکر شده و بحث بعدیش حجیت بسلا شهرت فتوایی و بحث بعدی هم که آخرین بحث در اینجاست بحث پنجم حجیت خبر واحد یعنی از اقسام و هایی که برگم شیخ متعرض شدن این پنج ها رو شیخ آوردن از باسته قطع زیر شیخ کرده اما کلن پنج مورد رو یشون ذکر فرمودند که ما به این مناسبتی هم در بخصهای سابق از کلمات اخلاقی ها و غیره انواع مراقص و رو به از کلمات مولان محمد علیه ازجارو پس مواردی رو که مروه شیخ در حجیت زن به صراحت بیان فراموده پنج نست. البته تو این پنج بحثی که ایشان مطرح فرمودند بحث حجیت شهرت فتوایی از اختصاصات ماست این اشتباه نشد یعنی شهرت فتوایی در میان کلمات عامه تن نشده اهل سنت مسئله با نامه خود اشارت فتوائی ندارن. و این شما توضیحات شما خواهد دارن. و همچنین شعبت احمقایی چون در بین اصحاب ما فعلا اصول تشکیره ما مثل محمد و محمد استاد سه نوع شعبت توضیح که میکنن فعلا اینطور طور شد اصحابه این هم در اصولیمون تشکیره شد یکی شعبت است که عادتا توی باب تعارض میارن و اگر شهادت روایی ثابت بشه مرجع تو تا دریم داشته باشیم روایی رو با عنوان مرجع و ارز کردیم اگر شعبت روایی بخواد ثابت بشه آزتا رو تعبده اهل سنت این رو دارند شهادت روایی رو دارند لیکن رو تعبد نه روی قبابه این خوب دقیق بکنیم چون ارز کردن اهل احل شعبت در بحث طاوس از سنت حدیث ندارن ما هم تقریبا نداریم چون یک حدیثی طاوله می حواله شده یعنی به عبارت دیگر در میان مساجد اهل نه ندارن که پیغمبر عرض شده باشه یا رسول الله شما مثلا دیروز اینطور پرمودی امروز اینطور دو جور عاشونا شده یا خود پیغمبر دو جور فرمیده باشه یا کسانی که از پیغمبر نقل کردن دو جور این نداریم اهل سنت لذا احل سنت با تاروز رو تماما حسبال قبائد روز کرد خوب دقیق بکنیم ما روایت داریم چند روایت هم دویانز ما مصادفی هستی انکل حدیثان مختلفان و کرارا نهارد کردن لفظ تاروز یا متعارضان هم ما نداریم این هم یک نکته در ما اصلا حدیثی نداریم که توی لفظ یعنکل حدیثان متعارضان ارز کردیم اصطلاح تعارض یا متعارضه این در مسادر حدیثی احل سنت بعدها پیدا شد در مسادر اصولی احل سنت در روایات ما جز یک روایت که در کتاب احوال است که حتی با اونجا لفظ تعارض آمده در هیچ روایت ما هم که شیعه باشه لفظ تعارض نناده یعنی که هم حدیثان متعارضان ما ندارید مختلفان جو حدیثان احد و مایه ما بر اخرین ها داریم اما تعبیر تعارض خود تعارض این تعبیر رو ما در روایات نداریم در اصطلاح اصول اهل سنت آمد در ازا بحث داره که تعارض یعنی چی مثلا تعارض وقتی که هر دو در مقابل طور این یعنی چی این شما مقدماتا در ذهنتون باشه که ما این لفظ کلاً نداریم یه اصطلاحی که ما به استفاده شده لفظ تعارض به این معنا یه اصطلاحی است که به اونا خب حالا وارد بحث بشیم تا یواش یواش این شهرت اهل سنت دارن حسب القالبه ما هم داریم حسب نرس که ادعا شد در روایات عمر بن عبدالعزیز به عنوان قرار داده شده به روایات رجالیات غیر از روایت عمر بن انزله مرجع شهرت ندارد مکتوبی ذراعتونه ارزشانده مذهبی سلام علی شما را در روایت شما این مرجعیت قبول ندارند اصلا قاعده بحث مرجع شهرت شهرت در روایت معذیه است بنا بر که مشهور مشهورا تقریبا از قرن هشت به بعد. اصلا به تا اصلا بر در از غمه هشتونه به بعد متعرض شده که جایی وقتش اینجا نیست دوم دو شروط عملیست به تغییر مزمون ناینی و اون پیش اصحاب ما قائل شده. از که قائل کده این از غمه هشتونه به بعد اصوله اون شروط عملی که اگه حدیثی ضعیف باشه اصحاب عمل بکنه شروط جابره و مراد از عمل در اینجا فتوا دادنه یعنی اگر اصحاب ما نه عمل خارجی اشتباه نشد مراد فکرها دادن اصفاق ما بر پر غربات زعید فکرها این زد به رو جورم می کنه این هم از اختصاصات فقه ماست این هم احل سنت ندارن خوب یک قد بکنیم اختلافات ما رو احل سنت این که شوقت جابر باشه یا نباشه احل سنت ندارن این اختصاص به فقه ما داره و تاریخش هم از قرنه هشتون به بعد آن روژه اینجا نیست شون برمارم شهر متعرض شدن این شده سوزیاد شهرسی یه قسم سوم شهرس همون هست که اطلاق شهرس فتواییست این هم از قرنه هشتون به بعده از قرنه به بعده این هم از خصائص ما، این هم با دهده سنت نداره این اگر ثابت بشید این خودش خود جهد. شوحن فتوایی یعنی اینه که یک فتوایی بین که مشهور باشه و دلیل نداشته باشه این استطلاحش باید فتوایی است این از همه هشتون که یک شهر داریم که رو بعد نتعرض میشین در اونجا تعرضش خادامه پس این مرمون شکر قبلت الله نفسه از هجه ای که در اینجا محل کلامه این چند توی رو شدم اعرض کردن به تون به ترتیب نام بودن زباهه و هر شد درها ها در کتب اصول ما به طوره اینطور این طور شد که در بحث زواهر مباحث سغربی در آدادن و کبرهی مباحث سغربی را قادمان به اصطلاح اینجا ما در جبه اول قربه که مثلا سیغه افعال زبور در چی داره مشتب زبور در چی داره شامل انقضامی می شود سغربی سیغه افعال لا تفعال خاص خواست اینا را غالبا در جلده اول رو به اصطلاح مجدی ما و مباحث کبروی رو اینجا آوردن در بحث خدیهت زن بوده. پس در اینجا بحثی که انجام شده حجیت زن زباقه فی نفس نظر مباحث تشریف این است که یعنی با وضع علم اصول رو هم و تأبیر و تنظیم ارحاظ اصول هم خدمت روشن بعدش مردم شهر متعرض حجر هلوهربی شنن تا هلوهربی حجر هست یا نه این بس به طور طبیعی چه در کتب اهل دن و چه در کتب اصول ما مثل قوانی و حسول در این کتب نه کتب متاخیر ما مثل که خایی در کتب اصطلاح اصولی متعارف حجر این قرنه اخیر غالبا پیه موانسه مقدماتی همون مواهزی رو به صدا الفاظ متعرض شدن در این بحث که اگر بخوانم معنی حقیقی رو تشکیز بدن چند راه دارم مثلا توازل هست در حسد هست, هست. اولیش رو تنصیل سرل لغه نداشت اگر قوان آیونشون باشه فراغ یا خونده با جناتا این تنصیل سرل لغه رو دیگه بعدها نگه شما الان در شده چون و توی کتابه اخیر و حوزه هست قبل در دکتاب های درسی مثل یا استاد نم خود جیهت قول لغوی رو در حقیقت با عنوان بحث کبردی اینجا آورده و الا در مباحث متعارف حوزهی ما با عنوان یکی از راه های شناخت وز و موضوعنده و شناخت حقیقت و مجاز تنسیز در حول لغه محسوسا من سابقا من توضیحا از بعدها در اماه کتب لغتی در دنیای اسلام را شد این طور من که این مقدار به تحلیل بیشتر و او حتی ازدهشون سعی کردن دقیقا مجاقل حقیقت تمیز بدن این اساس البلاغه زمخشری اینطوریه، اساس البلاغه کارش اینجوریه. اول اول معنی حقیقی این نیسته برمانی مجازی رو از واسه تحیلی دیگری هم در کتول وقت هست که این محاواز بشن لیکن به حضر این مطلب به اصطلاح یواشاش در گوضه های علمی ادبی دنیای اسلام جا افتاد که اصولاً دو قدمی ها آمدن دریمان معنی حقیقی و مجازی رو جدا کردن که اصلا معنی حقیقی این است و معنی مجازی این رو هم حسولی متأخر ما در اینجا آوردن اضافه دقیق خود مرحصه میخوام جای تنظیم بحث هم در خدمت آن عرضم این دو تا از مبارسه مبحث سوم اجماعه, اجماعه اجماع رو مرحوم میشه بانوای اجماع منقول ایشون هم در اینجا آورده من سابقا عرض کردم اجماع اساسا در دنیای اسلام غیر شیعه جاش اینجا نیست تو بحث حجیت زن نیست جای خیه مسادر پشکیه چون از کنم کراه خود جبگاهی مراد مسادر پشکیه مثل کتاب و سنت گاهی مراد طرق اثبات ما در دنیای شیعه از اجماع رو اینجا او که طرق اثباته در دنیای اهل سنت اجماع رو تو مسادر پشکیه او بردن چونها اجماع مثل کتاب و سنت نمونه اونای اینه یعنی اگر فقها یک زمان بر یک گفت می کردن حتی تحلیل کتاب می‌ذارم. مثلاً گفتیم که آقایان قلمان جمع شده که در این یا با مثال به خاطر مشوره کرد دیگر قربانی نباشید، چون مال تلف میشه. میگن اگر قلمان اجماع کنند، گفت سالم میشه. اونا اعتراضشون. دزام مرحله ایجما که من میشه در اینجا آنان اجماع منقوله به خبر واحد اوله، کلیم بحث اجماع در مصادره اصلیشون ندارد. در کتب اصولیشون. توی مسادر تشریعه نه توی طرق اثبات ما اینجا در طرق اثبات بودیم چه اجماع ما چه اجماع منبول مرحبت وردی هم شعرت فتوائی که از سر شعرت فتوایی اهل سنت کلا ندارن و از حسایث ماست و اینشانا توضیحاتش هم تاییم داد که چرا در جمعیشیه این محلت پیدا شد این مرگون شیخ شراییشو نه بوده فقط متعرض بحث و حجیت شده و آمین که بعد از اونو شیخ دیده از این بحث حجیت شهرت مال الان نید قدیمه صدیمه لیکن شیخ رحمه الله در اینجا جزء امارات به قرار دادن و بحث آخر هم حجیت خبر واخده که قطعا که از موازث بسیار اساسی و کریدی دنیای اصوله یعنی در مقام طرق اثبات قطعا هم ترین بحثی که بیشترین بحثی که شده و فردامانه ترین بحث و اختلافات بسیار شدید و تحلیل ها بسیار مختلف قطعا هم بحث موجود به خبرواهی اونی که سنیان دارن ما هم داریم و دیدگاه هم یکیه یه تصیب مثلا نسبتی به وضعی احوال که مثلا ما قاعده تصویبن نیست تا به این جاشه توضیح دادن می در خود بحث خبر بعد یکی از مهمترین بحث که بین ما و بین اندرسوند مطرح شده و تقریجاً چون قسمت اساسی شریعت بر اساس خبره بلکه الان تفسیر مبتنیست بر خبره احوال مختلفی شده چه از احوال بر خبر و چه یه فرم خبر اخلاق مختلفه این نقش بسیار زیادی پیدا کرد و بسیار تأثیر شد برای یه مقدار هم ان شاءالله داد در تقسیم بندی تاریخی معرفت دینی ما یه تقسیم تاریخی داریم بحث حجیت خبر دیر آمد اگر صورت روز نشد کمتر می شد من انفرم در معارف دینی بحثای اولیه بعد از صحابه اول فقه و تفسیر میشه گفت یکی گروه میشه از همون نیمه های قرن اول بعد از رسولا مبادث فقهی و تفسیری مبادث حدیثی پیش اهل سنت از اواخر بعد دوم یعنی از نیمه های قرن دوم موادث تقریبا زیر بنای حدیث شناسی نیما های فرمزو بوم ساله ساله خودشگیر لیکن تقریبا شکل خودشگیر 182-192 از این سال ها هم اصول همینی که ما الان بحث میکنیم تقریبا شکل خودشگیر هم موادث خودجیت خبر شکل خودشگیر و بعد از این فاصله یواش شواش اهل سنه شروع کردن احادیث صحیح رو جدا بکن که مثال باردش کتاب بخاریه کتاب بخاری بامان الجامع و صحیح الجامع یعنی این خود سر در تمام عقواب از توبیدوی ها بگیرین تا عقایت و اخلاق تا ملاحن فتن خواب تاریخ تفسیر در تمام عقواب اون چه حدیث صحیحی بوده که دار بگنن اون سالی که من گفتم 180 بخاری افاتش 256 به قدر نفهم یعنی فاصله حوضه شهستا البته قبل از اون که تا احمد داری من این که هماروار درسته حدیث در اینکه مباحث متاسفانه حدیثی و رجالی و تشخیص حوچیت این حوچیت حسنه دیر آمد اگر صدت و آمده بود خیلی بهتر نزداره چه می شد و آمد او در زنده معارض دینی او آخر قرن دو همه اصول اواخه به قرن دوم هم حدیث و مقانی شناس حدیث اینو خوب دردن داشتیم چون این از از اون وقتم چون متکلمی سر کار بوده هم موادس کلامی هم بزر شد بست خبر زاگی کلامی هم پیدا کرد یعنی متکلم بزرگ خصوصا معتدله چونها غالبا تماهی رو داشتن به عدم و حجیت به خلاف هم که تماهی به حجیت داشتن این موارد حجیر خبر و خیلی پیچیده یک درن میشادا توضیحاتش رو به اسم لاحظهارات اوجهی که میتوانم میشادن ضمن این بحث هم. این مجموعه م... به اسطلاح اماراتی است که مرحوم شیخ قدس الله در و طبق همین تصویر اولین بحث اماراتی به حجیت زباطر قرار بوده که مرحوم شیخ انجام در مرزه توستاد از کنم مریار بحث هایی که این اینجا در روز مقدمات صحبت می‌کنیم. از کتاب نصفر و اصول استاد رزان را تارند و این که آن بر مراجعاتش ارز کنم که قبل از این که وارد بحث بشید من اشاره کردم این بحث برمای بحث کوبریز و در تنظیم همه ها سخصول پیش در اینجا تو امارات آمده و بحث صبروی رو به اصطلاح در بخش آمده در همون به اصطلاح ما جلده اول یا بخش اول هم اگر آیا در درده در نباریشون در باشه مجموعه ارحاسی که برمیگرده به لغت و شناسی و الفاظی که ما به کار میبریم مجموعه ارحاسی که در جلده اول اصطلاح هم رو به دو بخش تقسیم کردن یه قسم مقدمات و اصول رو گردن مثلا اگر یاد باشه کفایه، تک تنظیم شفای دین تبیری یک مقدمه داره 8 تا فصل داره هشتا تا مقصد داره و یک خاتمه در مقدمه 13 تا مطلب رو آورده مطلب اولش راجع به علم موضوع کل دومش رو میشه و معظم این 13 مقدمه راجع به بحثه و از از یعنی هم مشخصه مشتاق اندزه همین یکیش هم سه‌عامند یعنی موابصی که اجمالاً به wzgl برنامه‌ریزی به استثنای درفه مشتاق بعد ها خب اثر خدمتون بحثه مقصد اول و دوم و سوم شامل همیون اینهاش که برمیگرده به حوامه و نگاهی و مفهوم مطلق و عام و خاص اینها این مجموعه تعجی مقصدی که عادتن متعدی که بجز اول بعد مقصد شیشومشان که اماراتی که الان هستن هفتان اصول عملی و هشتان میشن تا آرز خاتم هم تا یه یه دوره اصول برستا در ذهن و باشه روی همین کتاب های درسی مطارب و حوضه هست از که وقتی مقصد اول دو و دوم تا پنجم و مواقص صغریات الفاظ قرار دادن ولی با چه مرموم خب اشکالی به ذهنش رو که چرا ما مج... چه پرگبین مشتب می می‌کنه با سیره افراد هم دو سیره هر دو حیعت حالا می خواهد حیعت اصطلاح ما حیات افرادی باشه حیعت افرادی مثل مشتب. یا حیات ترکیبی باشه حیات ترکیبی هم آیان فر گذاشتن مثل حیات اینشایی رو یک جا حیات جمعه شرطیه که تعلیل باشه و آن منطق تو یک جای دیگه, دیگه بردن. اكثر این در موقعت عرب مفرد داریم ترکیب داریم مفردات صورت دارند ماده دارند ترکیب تام ترکیب ناقص داریم آیا مطرح این بحث ها شدند اما متفاوته. مثلا ترکیب ناقص مشهور بحث رجلن عالمو اینو با عنوان بحثو بحث متعرض شده ترکیب تام تحتون جمله شرطیه یا صيغه ترکیب اثباتی هم دسته مشترک خاص اگه دقت بکنید یک بحثی که در مجموعه این جلد اول و این که الان مدخل دوم دو بحثش اینهتون حجیت این اهل قول اهل لغت و حجیت زواره اینا همه در گردشش با مورد الفاظه اما یه نوع ناهم ناهماهنگی در بحث آمده بعضی ها مثل محرومه آشانس نصفهانی، ناهنمهنگی به فصلا محشط به بردایشان توی پلوی عوام های که داشتن محشط شاید توی مقدمات باشه، بردای تو توی محصد اول باشه بی این مقدار به نظر من که سهر نمیشه در خود کفایی یا به در کلبات محروم اصطاق، فصلا توی محصد حرفی تو مقدماته در کفایی یک جدید مناسبتی، توی مقاصده، توی عوامه متعرض معنای فعل هم شده که آیا فعل مشتمل در زمان هست یا نه یعنی دلالا زمان یا نه پس معنای حرف رو یه جا بردن معنای فعل جدی افردن یعنی انسان احساس میکنه در مجموعه افغاست اصولی ما اونی که الان موجود داری یه ناهماهنگی وجود داره یعنی یه انسجام کلی در بحث نیست به کنید من عرض کردم ما در مسائل علمی همچون که دنبال خود اون علم هستیم باید دنبال تنظیم هم باشیم این به مسئله اساسیه که ما اضافه برای اینکه که مواقص و اصول رو می کنیم باید بتونیم یک نوع تنظیم هم به مواقص و اصول بدیم این تنظیم فعیلی به نظر میاد خیلی همچین جاده و صحیح نباشه مثلا در مقدمه ها به جای اینکه ما مثلا 12 مقدمه را حالا کمتر بیشتری شد در مواردی که مربوط به و استعمال استعمال و مشاهده اثر از ماده بحثی این مقدمات هم راجع مقام استعمال بعضی مقام رد برز و بعضی مقام, برز مقام خوب ما به جای انجام می اومدیم مقدمات ilmu usul درباره خود قانون و حقیقت قانون و قانون‌گذاری و حق قانون‌گذاری و حقیقت قانون حق قانون حق اصول اصول در دنیای اسلام چیجور این علم اصول تدوین شده این کار بهتر بود که مقدمه ما بیایم در مقدمات اصول یک بخشی رو قرار دادیم که مربوط از به یک بخش اصول اون بحث الفاظ این اومدن مقدمه کل اصول قرار دادن این خیلی تنظیمش تنظیم صحیحی نیست دقت می‌فهمی یعنی مشکلی که داره اون چیزی که مدمعا به اسم مقدمه آمده حالا مقدمه اولی چون به اسم بحث ابوس تمامیه راجعه به علمون این اون بحث اولش خوبه این بحث اولش به این معنا که بیان دررسی بکنن که آیا علم همچنی که اینا گفتن موضوع میخواد مسائل میخواد خاطر میخواد چی میخواد موادی تصوری میخواد موادی تصدیقی میخواد خب این باز بررسی بشه جایگاه علم وصول در میان علوم معین بشه جزو علوم حدیثی جزو علوم اعتباری موضوع داره موضوع نداره اصولاً امور علوم اعتباری موضوع تدیر. موضوع تدیر هستن، نیستن خب این مباحث خوبیه این مقدمه اولاش نه شکلی که الان در کفایت هست این بحث خوبیه با با یک نوع توسعه بحثی بخش نسبتا خوبیه بقیه مقدمات به ذهن انسان میاد که واقعی به مقدمات علم و اصول نذاره یک بخش اصول که مباحث الفاظ این در رابطه با اونه نه با کل اصول نه مقدمه برای کل اصوله مثل اینکه که یک بخش اصول و اصول عملی قراره قبل از اصول عملی تعریف به اصول احمدو یا تاریخ اصول عملی میگی یا ثوارق ما با اهل سنت میگی یا یه شماره‌ای از اصول عملی بدین که اصول عملی مجموعه این مذهبه یا مثلا تقسیم بندی اصول عملی که اصول عملی یا عقلیه یا شرعیه یا به ساده شما بگونی جایی میشه یا موضوعی جایی میشه یا هر دو جایی میشه بحث بحثای اینطوری رو شما در مقدمه اصول عملی بدین نه تو مقدمه اصول هر چیزی جای خودش مناسب خودش پس یه این است که این چیزی که الان به عنوان مقدمه علم وصول گفته شده این ظاهرم به ذهب میاد که درست نباشه مقدمه علم وصول باز مناسب با علم وصول باشه نه با یکی از احساس احساس این مقدمه مناسب با یک بخش با اون موادسه این یک مطلب که احساس و بعد باید به نحو دقیق و به نحو روشن مواحص الفاظ رو تنظیم بکنیم یعنی دقیقا روشن بشه و به نحوه واضح از این حالت پریشانی و جا به جایی در بیاد بحث از این حالت در بیاد و به نظر ما میاد که بحث هایی بسیار, بسیار خوبی رو داد و حتی این مبحثی که الان با عنوان حجیت زواهر رو میخوایم مفرح بکنیم این هم اون وقت جایی به ها از ها حجیت قلوقه احلی لغت اون هم جایگاه مناسب خودش رو پیدا میکنه هر کدام ارجاعش بدیم به جایگاه مناسب البته یه توضیحات رو برعرساییم تداجه به کیفیت موادس الفاظ آخر بحث نشانت چیه وقت به ذهن ما میاد که اولاً این نحوه قصه این نکاتی رو که بار در نظر بگی من بشروع به شکل نقات و نقطه و نقطه و فائده نقطه اول اصولا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم نقش الفاظ و مدالیل لحظی در کلیه قوانین، اصولاً در رشته علومی که الان در بشر متعارفه فرمز که ما علم قانون یا حقوق رو به عنوان یک علم استقادار اعتباری و حقیقی قرار بدیم نقش الفاظ در این علوم تا چه منداریم؟ و چی بونه باید باشه؟ از این مباحث از وقتی که قانون به شکل جدید مطرح شد از همون قدیم یعنی از اون قدیمی که قانون به شکل جدید مطرح شد در کتب قانونی پس این قدیم که کتاب در این جهت، در این جدید قانون به شکل رسمی قانون در اصطلاح یعنی مجموعه که امری که خودش نفسه حقیقی یک امر به اصطلاح در وعای اعتبار یک حقیقتی داره و این حقیقتش از اخرا، از حاکم از حکومت از دولت از همه چی جداست مثلا قانون بحث قانون وقتی هم در مشروطه ایران ای سال و خوردهی سال قبل محتش شد به این عنوان چون در اون زمان به اصطلاح خودشون در نظام های دکتاتوری قانون نیست یعنی چه قانون نیست؟ قانون همون رویست که شاه میگه شاه هر این در نظام های اصطلاح استبدادی که دعای مشروط رو یا در اصطلاح امروز در نظام های قانون چیزی به نام قانون وجود نداره شاه با به این کار رو کنیم شاه این کار رو نکنیم این طوره مشروط در این اساس شد که چیزی خارج از وجود شاه باشه هم شاه و هم دولت و هم وزرا همه مقید به اون بشن اصولا مجلد شورای شنیدیم این چون یک مجلس وزرا ناصر نشاط تشکیل داده بود اینا می‌خواستن در مقابل مجلس وزرا در آخر مجلس وزرا شش تا وزیر چون مسئولیت برداشتن یک شهر در میمانواد بشن از نظر تاریخی این کلمه مجلس شورای ملی در حال خود مافیا این در مقابل مجلس شورای وزرا درست شد امام بدی زهر نیا گفت که مجلس شورای وزرا کار بازار مجلس شورای وزرات توسط مزرطه رو دینشاه نشد توسط خود نازم دینشاه که تصادر این های تاریخه توسط رو مجلس شورای وزرات تشکیل شد یه نکتهی هم, هم در دنیای عرب شعری به جایی مجلس شورا میگن ما یه مجلس شورای میگید این اصطلاح رو الان عرب کار نهبره مثلا الان ما میگیم مجلس همکاری خلیج اونا میگن مجلس تا، شورای هنکره، میگه شورا، اون کلمه مجلس. ما در اصطلاح فارسی اشتباهاً این دوتا رو با هم دیگه چند در دنیای عرب اگه خاصم حالا حضورتون این دوتا با هم دیگه چند نمی‌شه. یعنی میگن می مجلس شورا، اون مجلس شورا میگن کلید صدا ما فارسی عربی فارسی هجما نیست. م... کلمه مجلس رو که ما به کار می‌دیم الان در دنیای عرب مرادف شورا است. مثلا مجلس تاانو خریجی ما ترجمه شورای همکاری مجلس ترجمه شورا شورا و اما در زبان فارسی ما هر دو با هم چند بودیم یه نقطه بود میخواستم که اشتباه نشه در ترجمه در فهمشون باشه الان یه دقیقه میکنیم مجلس شورای ملی یا قانون بر چه اساس رو شد؟ در این اساسی نظامی باشه حقیقی خارج از وجود حاکم حاکم هم به اون مقی حالا این مجلس هم در مرحله قانون خارج باشه هم تو مرحله قضاوت و اختلافات خارج باشه هم تو مرحله اجرا خارج باشه لذا این تفکر معروف پیدا شد که سه قبعه باشه مغننه و مجری و قضایی این تفکر رو مرحله ها خب خیلی در این مباحث بحثای قانونی هست الان هست مخصوصاً در مزانهایی که به اصطلاح موزی ما دولیجی کومونیستی و انظام زیادی راجعی بینند هست این تشکیل قابل چیز نیست اجرا نمیشه نمیخوام وارد این خصوص باشم شما از محل وقت ما خارج ما قدیم ترین نوشته هایی که در قانون بیم معنا داریم در دنیای خودمون نیم معنی چون این شبه توضیح کدن که مجموعه قرآنی که ما از قبر داریم گاهی دارای این معنا نیستن اینی که رسمند این معنی از همین انقلاب کبیر فرانسه و تقریبا مثلا بهترین و جمع دورترین اینچه کتاب این کتاب روحالقوانین منتسیوز که در این جنب سعی کرده مسائل قانون برسید خوبه از کتاب مال دویست و قرده سال قبله خیلی صحبت ها روش شده اما روی هم هنوز کتاب زنده ای حساب میان و این تقسیم و با استغانه در حقیقت زیر بنای شینی صورت علمی همین کتابه او به و مجریه و گزاریه در حقیقت در در همین کتاب روح القوانین یکی از مسائلی که در همین کتاب روح القوانین روش کار میشه مواسه الفاظ قانونه وقتی که اول نشه بعد اینجا اینا اصرار داشتن از همون اول یکی از خصایص آنون باید روشن باشه الفاظ مجاز کنایه هم برس میداره برس داره اینا تو قانون باید نکار برده بشه یعنی اگر ما در الهیات آمدیم گفتیم میشه مجاز گفت کنایه گفت تعبیر گفت برس نظر از این هر گفت اینا بخشش تو همون الهیاته یا به اصطلاح ایلوزیاشون متون دیمی متون مقدس تو متون مقدس میگه هر قامل رو زن اما توی قانون یکی از حسابس قانون این رو میدونن حبود قطعه کنیم پس فنابراین 10 زباهر و الفاظ در موادس قاملی روز هم محتره لیکن از این زاویه مراد ما از این زاویه یعنی اونا مقید به یک لغت خاصی نیست چون نکته دوم خواهیم ما در اصول خودم مقید به لغت عربی هستیم اونا مقید به یک لغت خاصی نیستن اونا قانون رو از این زاویه محرمتن رابطه قانون رو با الفاظ از این زاویه الفاظ قانونی و ماده قانونی و لذا آمند انواع قانون رو گذاشتن و قابلیت تحمل لفظ مثلا یه چیزی به اسم قانون اساسی گذاشتن اون یک سیاقه خاصی داره سیاقه یک سرکردش یک نگارش مخصوص خودش داره یه قوانه مدنی گذاشتن اون باز یک سیاه و رفش خاص خودش رو داره این البته این بحث وقت خوبیه توی خوزهار ما نمیشه خوبش تو خوب مقدمه مبارس الفاس که مخلیم بحث رو بکنیم اونجا مطرح باشیم بحث خوبیه من چون مخلیم این دوست فهرسوار مبارس مطرح بکنم سند و این مقدار فهرسوارش اتفاقه مثلا فرسون شاهد چیزه باشیم سند چشمندار یه کشمنداز رو در اساسی یک روش و ترکیب خاصی مطرح میکنن مثلا فرشم کنونسوینای بیناندی که اصطراح بزن این رو روی یک لغت خاصی و روش خاصی مطرح میکنن قانون اساسی رو باید با یک لغت دیگه تمام بررسی شده برنسی کنید تمام پس بواقصه قانونی به طور کلی در دنیای روز و رابطهش با لغت یه بحث زندگیه نهی که و من پاید داریم. دران داداورد رو مطرح میکنه لکی اون مراجع لغت خاصی نیست عربی و فارسی و انگلیسی توش فر نمی‌کنه اون آمدن هم خود قانون رو بررسی کردن که مثلا اگر یک قانون بنا در تحت جهانی باشه چون مثلا یک قانون به عنوان در تحت جهانی من شاد تو همین بحثای بعد از دار مستدر پنج یه که سازمان مرد تشکیل شد اصولا درست که اون از مسائله دوهک جانهی بیدا بکنه یه طبی مثلا قوانه جانه راستی به طرف مثلا به کودکان قبلت به نبرو قوانه جانه راستی به ترهنگ وز به ترهنگ قوانه ها این کنمانسیمایت کشمی دید این ها باید یه باشه خود دوغت شده دوغت نیست ها میکنه که برسانه با تمدونهای مختلف و تمدونهای مختلف بسازه چون ما جهانی باشه دیگه لذا باید خیلی مراهات می کنن نگر مثلا چینی ها قبول نمی کنن ها قبول نمی کنن ها قبول نمی طبیعت اون قانون یک طبیعت خاصیه که من نمی خواهد جای بسیم بسیم پس بنابرا مواحث الفاظ و رفت بین مواحث الفاظ و قانونی کار ما ها اصول این یک زنده یه نه ایشگاه کنم به توسومان کنیم لکه این شکل دیگر داره و مخصوصاً نفت قوانی جزئی میشه قوانین مدنی میاد تا این قوان میاد پای این قانونی جزئی تر میشه هی hey, باید انکاز سریعتر روشنتر مدام سوش نباشه چلایه سوش نباشه تحلیم بر نداره به اصطلافاتشون در مصول مقدس میشه تحلیم راه بدین ما تو قانون میگه نباید تحلیم راه بدین یکی از خصاصها این همون است که اینشان ما هست تا این تصمیم در مباحث و هم ما خیلی جام نمیدیم روایت هر تحلیم های در این مراده اونه وقتی اجمال آمد یه ما نمیتونید یک ازانه رو با یک دقیقه مجمل اثبات بکنه این شبیل این بحثیست که الان در دنیا روز امروز این, این صورت بیدیم در اصطلاحات ما میگیم کنان نفس اجمال داره وقتی اجمال پیدا کرد نمیتونیم آسا این اجمال نفس هم در شاید رویم برس اشاره بکنن دو, دو جوده به یه اجمال است که بحثای که رو روی داره اینش اصول رو بودن همین بحث مجموعه رو بودن یه اجمال که موردی است که موردیش او توفه رو بردن. پس این نوزه اول این که قانون با الفاظ رابطه خیلی دقیق و امیری داره با به اقتصاص به فره ما و اصطلاح ما رو را. اون رابطه رابطه دیگه است ما این دو اصول از اون بحث نمی خوب ما تو خودمون از, از اون رابطه بحث میکنیم. تو دانشگاه بحث میکنیم. تو برد مباحث بحث نمی ما بحث نمی ما بحثی که داریم رابطه دیگری نه این رابطه ای که در این کتب قانونی مزنش نقطه دوم دو ما در مباحث فقیه خودمون ما مباحث الفاظ عربی رابطه مستقیم داریم به خاطر اینکه که اصلی ما عربی ما با این لغت رابطه مستقیمی داریم و کارهایی رو که باید انجام بدیم سر همین مواحث لغوی خاصه که باید از لغت حربی باشه اون وقت در مواحثی که راجع به لغت عرب میاد باید جهات مختلفی رو در نظر بگیریم یه مقدار از جهات بر میگرده به جهات حمومی نسی که حقیقت لغت چیه؟ حقیقت ورد چیه؟ حقیقت استعمال چیه؟ که توضیح جهاز می به یه مقدارش هم برمیگرده به خصوص لوقت عربه چون لوقت عربی داری مجیدی خاص خودشه در مباحثی که ما الان داریم به طور تبیدیم قالبا سرک و سیاغش سرک و ایشتر امور انتظاهی و تجریدیه و که انصافا دیگه حالا ما در معقول قبول نکنیم تاریخی به داره پسه در لغت تاریخ به داره نمیشه این کار که یعنی یکی از جهاتی که در مباحث ما جای او خیلی خالیه در کتاب و اصولی ما نکته های تاریخی لغت عرب مورد توجه قرار نگرفته. و اگر بنابرای این نکته های تاریخی رو حالا ما بگیم اون کجا بیاریمونه شد اصول کجا بیاری به نظر من توی بحث و حجیت قول احلقه که ما می میکنیم جایگاه مناسبش برای تاریخ لغت عرب. و چی جور اصولا ها پیدا شدن و چی این لغت عرب تنظیم شد نامه ها از قدیم و چه اساسی تنظیم شد جایگاه مناسبش انصافا تو های ما تو بحث و حجیت قول احلقه هست چون اولیه تو مولا اهل لغه یا از نوع انسداد رشته یا از نوع اولیه قدرت مباحث کلی تقریبا انتظاری و تجریدی اما مباحث عینی و خارجی و تاریخی رو متعرض نشدند خاص بنابراین نکته دوم ما با لغت عربی سر کار داریم یکی از مباحثش و اصل رو در میگیره یکی از مباحثش به خصوص لغت حرب که مراعات جهات تاریخی باید بشه نقطه یه در تنظیم این ابحاظ ما به طور طبیعی باید از دو محور مهم در این ابحاظ صحبت بکنیم به طور طبیعی یعنی یکی محور وضعه یکی هم محور استعمال در مباحث ما مباحث استعمال جدا نشده به مناسبتی تو همون مقدمی کفایی دو که اصلا متعرض شده آیا استعمال لحظه مشترک در اکثر از معناه یا استعمال لحظه در جمع بین معناه حیدی و مجازی دوستیانه در اونجا آمده اما انصافش اینه که ما توی استعمال هم احتیاج به بحث های مستقلی داریم به این مقدار بحث های اجمالی نمیشه اتفاق کنیم بحث های مستقلی بشه و بهترین بحثش نمی بحث موجید زباهریست که الان ما محرق بریم کنیم این رو جز موارد استعمال قرار پس بنابراین ما یک مبحث وضع داشته باشیم که الان موارد وضع ما متفرق شده ما بین مقدمه کفایی و که مقاصد اول تا آخر به متفرق ما این رو دیم جدا بکنیم مباحث وضع یک جا بیاد. اون وقت در مباحث ورد هم از این آشفتگی نجات شدیم. اگر ما قبول کردیم در لغت عرب کلمه و واجه ها در لغت عرب ستاس اسم از تو فعل و هر هر کدوم رو توضیح بدیم اسم توضیح بدیم فعل توضیح بدیم هر اینطور متفرقش نکنیم. چون در لغت عرب معانی مختلف با حیاهات مختلفه خود ها رو در تم اونجا بررسی بکنیم چون لغت واژاره مثل فارسی نیست که ما عرض کردم ما یه سری از لغات داریم که معانی مختلف رو با با مواد مختلف مثلا برای درگاه یک لحظه کار می‌داره برای در بسته لنگ دیگه برای مثلا لحظه قیام یک لفظ که داره طعام مثلا لحظه دیگه به کار می‌داره این معانی مختلف رو با مواد مختلف میگن لغت چینی برخوردت چون لغت چینی کردن لغت یه چیز اینجوری اما اونی که الان مصعارت در لغات قالبا به یک گردی دو شکل البته من بخوام بگم استعاره یا به شکل حیئات لغت عرب و لغات سامی یا به شکل این لغت عربی که هست معنی شدن لغات سام یا به شکل اضافات در اول کلمه آخر مثل فارسی خودمون مثل دیلیسی مثل این لحظه که الان هندو و اروپایی به اصطلاح مجموعه این لغات یا به اول کلمه اضافه میکنن یا با آخر کلمه اما در میان لغت عرب با حیئات از اون بره هم ثابت شده که در لغت عرب حتی حیاث ترکیبی تأثیر میکنه یعنی ترکیب ما حقوقات تأثیر یکی دل هسته مثلا یا که نبود یا که نست خب این بخش حیاث رو شداره بیاریم پس بنابراین ما در لغت عرب من الان فقط هم صحبت میکنم تنظیم و مواحص احتیاج به بخش دیگه داریم یکی برمیگرده به مواد، آزتن ما مواهرس موارد رو توی علم لغت آوردیم بردیم اونجا قرار کاریم حتی در کتب اصول اهل سنت در یک فتر زمانی ازده از الفاظ رو ولو بله حاضر حال افرادی به جهت کسفت درمان در تو در اصول آورده مثل معنی وا حتی تو اصول علامه هم هم سرگی اصول نگاه کنیم معنی واق، معنی نه معنی سمه، معنی تا آن در بر میکنه، نمیکنه. مقداری از این حروف رو تو پسو با اصول رو بردن. در اصول شیعه ما کلن اون بحث حد شده به استثنانی که دو بحث خیلی حساسی مثل مفاد این که در بحث مخمومن تو ببردیم الان کلن اون موار اصلا حد شدیم مواد رو تو بحثای فقهی مذر میخوام بشید تو بحثای لغوی و انسان هم جاش همون جاش بحث بحث لغوی وارد باشه ما در اصول چه کار باید بکنیم خوب دقت بکنیم یک موادس اصلی رو که ریشه نیست بکنیم دو اگر بتوانیم تحلیل لغوی و عرفی بدیم خوب دقت کنیم سه از اون مهمتر تحلیل و اصولی و قانونی بگیم که من اینجالا توضیح داشته ما اگر ذهن آیه که تاکید داشته نیادشون باشه مثل اگر ذهن اگر نهمان آمد ناندخرد به فارسی بگم حالا اینجا اگر ذهن فشتای خود به اون مثاله عقیق بپار اگر نهمان آمد ناندخرد ما میتونیم یه تحلیل و قبی بغرفی بکنیم که اه اه اه اگر در این رفتی میاد دو تا جمله رو به هم رفت میده. مهمان آمد نان بخر در این رفتی که دو جمله رو هم به هم میده چیکار میکنه حدودش چیه منتهی به مفهوم میشه یا نمیشه یک <تصفيق> بحث لغوی میکنیم یک بحث ارتعان میکنیم یک بحث قانونی میکنیم حالا تو در موادس منطوق مفهوم اگر آبونازشون باشه اینطور گفته نشده این راهی دیوس که ما عرض کردیم و در مباحث خودمون هم عرض کردیم دو تا نکته اساسی در نظر می گیریم یکی استظهار یکی تحلیل خوب دقت بکنید در این مباحث یکی آیا مفهوم در میاد یعنی استظهار دو تحلیل و شیابی او آیا این از ماده در میاد از چه از در میاد از دلالات سیاغی درمیاد. میاد سیاغ نفهمید مثلا مرحوم استاد آیه کوی یا مرحوم نایمی مرحوم نایمی فرماه سیقه افل در حجوب نمی کنه وجوب رو از لزوم اطاعت مولا بر عم از بخنه اغلا در میده اون دفت کنید چیز پس این حجوب از یک قرینه سیاغی در آمند آن شاید که بحث زید مرحوم استاد مرحوم استادشون هر میده همین مکتب رو برین ستون مدار قاعده ای میگه افعال بر وجوب نمیکنه مولا که گفت پس ما در موارد خودمون تحلیل عرفی تحلیل لغتی تحلیل قانونی میکنیم و استدلالا من نصفی قد از بحث یعنی برام چیز تمام بشه در حال بیاد بعد الان دیگه بحث میشه ختم میکنیم تتمه بحث و ابتدای بحث ان شاءالله فردا از کلمات استاد زون الله تعالی علی الله علیه